پارموج فرم، پارموج محفظ باشید انشاءالله <تصفح> السلام علیکم و رحمت الله عوضو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین نحمده و نسعینه و نشکره. و نعوض بهی تبارک و من شرور انفسنا به سیعات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمد عبده و رسوله اللّه عليه و على سیگمان بقیه الله في ارض قال الله العظيم ايا نعبد عبد و ايا كان اللهم كل والد يك الحجت ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في حاله الصعه و في كُلِّ کل ساعت و وَقَائِدًا و حافظا و قائدم و ناشرا و دریگن و عینا حتی تسکنه اوکتو آ و تمتعه خودم و همه عزیزان را ببره به توصیه امروز که روز هفتم ماه سفر است. با دو حادثه در تاریخ اسلام مواجه است. یک بعضی از مورخین نوشتن شهادت حضرت مجتبا علیه السلام هفت سفر بوده است البته مشهور مورخین بیست و هشت سفر را نوشتن ولی پاره ای هم هفت سفر رو گفتن مسئله دوم به دوم ولادت موسفد جعفر علیه السلام، است ولادت امام هفتم رو مشهور از مبرخین هفت سفر نوشتن حتی بعضی از موردخین به طور جز، هفته سفر رو نوشتن مثل امروز که مرحوم مجلسی هفته سفر رو ولادت امام هفته می به بسیاری از محدثین هم امروز روز ولادت نوشتن بنده هم به عنوان عرض عدب به ساهت اقدس دو حجت خدا ان شاء الله بحثم رو پیرامون حضرت مستطف جعفر علیه السلام آغاز میکنم البته چون مورخین تقریباً نزدیک همه هفت سفر رو نوشتن و به تاریخ و به تقویم نویسان هم ارز میکنم که این رخداد رو بنویسی تقویمها غالبا نوعا که بنده دیدن فقط شهادت امام مجتبا رو نوشتند در حالی که ولادت بن جعفر علیه السلام در شهرت عظیمی است که هفت ماه سفر است شایسته از بین دو عزیز عالم امکان به حجت خدا در تقویم ها هم این ارادت بحث به بیاید و اینکه روز ولادت روز جشن و سرور است و با شهادت مغایرت داره این مربوط به خود ماست ما وقتی میبینیم دو حجت خدا در یک روز رخ دادی یکی شهادت و یکی ولادته خب جوری عرض عدد میکنیم که نبا شهادت مغایر باشد و نبا ولادت خب موسطب جعفر علیه السلام در یک قطعه است که بنده بحثم رو روی همین قطعه تاریخ میبرم آیه کریمه ای که تلاوت شد همین آیه است که همه ما در نماز میخوانیم ای یاکن عبد و ای یاکن استعیم موسفد جعفر علیه السلام می گذشتن در داستانی است معروف و مشهور بیشتر علمای اهل سنت نوشتن در کتاب‌های مختلف آمده و از شیعه هم نوشتن که وقتی میآید بگذره در کوچه در خانه ای باز میشه. یک کنیزی از درخانه بیرون میاد در حالی که در بازه صدای آواز و رقص و بزن و بگو و وزق خیلی ناهنجای جعفر علیه السلام میشنه همونجا توقف میکنه اون چ که اون خاک رووب آب آشغال رو داشت به کنار کوچه دم در ریخ خواست برگرده حست او رو صدا میکنه. میفرماید ساق به این خانه اببد یا غ. او میگوید یاخور است ابد نیست. اون زن که میگه خود عبد نیست، مخصودش از خور همون خوریست که میگویند عبد و خور بنده و آزاد استراحیست بین این که میگویند فرانی بنده است یا آزاده او میگه نخل خور موسط نجا فرمی فرمانه و راست گفتی لوکان عبدن لوکان عبدن خاف مولا راست گفتی اگر عبد بود از مولایش می ترسی این عبد نیست اینو میگه تو میفرماید و میگذرد می این کنیز برمیگرده به منزل وقتی هم بوده که بشت ابن که معروف شد به بشت حافی مشخور قضا خواست بشه سفر پهم بود اون کنیز دیر کرده بود در این که با یه تشریفات سفر رو مهیا کنه و لذا گفت که کجا بودی؟ سفر هم سفره است قرار در کنارش هم جام شرابه گفت چنین بود مردی با این شکل با این قیافه به من فرمود تنبود صدقته راست خفتی این عبد نیست این آزاده لوکان عبدن خواف مولا اگر عبد بود از مولایش میترسید. وقتی نشانه ها رو گفت فهمی موسط جفه پای پیاده دوید تو کوچه دوید به موسطن جعفر رسید افتاد روی پای عزت گفت توبه توبه, توبه تو از خدا بخوا استغفار من رو به توبه مرا بپسید موسطن جعفر هم پذید خب این شد بشر حافی بشت یعنی بشرابن حارثی که با پای پیاده دوید حالا این بشت کیست بشت از محدثین بزرگ سنیست بسیار هم با شخصیت احادیث زیاد هم نقل کرده در کتابهایی که مربوط به روات و رجال اهل سنته مخصوصا تحضیب و و بعض کتب دیگر می نویستن این بشت ابن بیست و پنج شیخ داشت شیوخ او بیست و پنج نفر بود یعنی از 25 نفر شیوخ نقل حدیث کرد نقل حدیث کرد و پنجاه نفر شاگرد داشت که اونها از همین بشت ابن هارس نقل حدیث میکرد شخصی دیتی بود بزرگ ولیزا وقتی نقل میکنن مورخین مثل ابن خلکان و بعض دیگر می نویسند که اون محدث بزرگ بود مورد احترام احمد ابن حنبل بود ولی این محدث یک مرتبه منحرف شد تمام و گذاشت کنار داره احادیث و همه رو در زیر خاک درد کرد. رفت به سراغ عیاشی حالا چه می شود که انسان با اون سابقه ممتاز به طولانی یک به این همه حدیث رو به این همه آیات قرآن که بیان شده اینها رو زیر خاک میکنه میده سراغ عیاشی سراغ زنبازی سراغ رخاسی سراغ میخاری اون چنان که نفت کردن در بارش وستش میشه حالا این انحراف چیست این خود که متلبیست که همیشه در دعاهاست. اللهم من اینی عوضو بکمنسو الخاتمه خدایا به تو پراخ میبرم از اینکه که من بد باشه این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آقبتی سلم اللهم مني اعوذ بك من الشك والريب خدایا به تو پناه میبرم که در مبادی اعتقادی دچار شک شوم اعوذ بکم من سوء الخاتمه به تو پناه میبرم که پایان زندگیم پایانی آتش به جهنم باش این وضعی که برای انسان رخ میده و باید همیشه انسان در پیشگاه خدا باشد و خاضع باشد و به استخدار. حالا برگردم جمله موسط جعفر علیه السلام رو کمی توضیح بدم فرمود صدقت راس گفتی کنیست لوکان عبدن اگر این عبد بود خواف مولا از مولایش شمیت است. عبد اگر انسان بود عبد به معنای بندگی است که انسان بنده خدا باشد. در نماز هم میگیم گیم کن عبد و کن است های. من تو رو عبادت میکنم و از تو مدد می جویم کن عبد انسان در زندگیش باید همه جا عبد باشه در خانه عبد باشه بنده خدا باشه در خانه بندگی خدا بکنه در محل کار بنده خدا میز اداره بنده خدا ماموریت در کارها بنده خدا وضاعف و تکالی نسبت به جامعه بنده خدا در همه جا بندگی، نه آزادگی در خانه بنده، در بیرون خانه بنده اگر آزاد بود، زبان اگر آزاد بود، پر از گناه خواهد شد گوش اگر آزاد بود، گناه خواهد سرزد دل اگر آزاد بود، به هر گناهی متوجه خواهد شد به هر باطلی متوجه خواهد شد دلی که درش گناه شد دلیس مردد دلی که درش گناه رخ داد دلیست که در اون شرکه اگر توحید در دل بود اگر خدا در دل بود اگر بندگی بود که چنین نبود ما در نمازهای پنج گانه ده بار عرض می کنیم یا کن خدا یا تو رو عبادت میکنیم؟ آزاد نیستم بنده تو می که در مسجد مدینه بودم مسجد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آهی وسلم بودم دیدم موسطن جعفر علیه السلام وارد شد وقتی که وارد شد بعد از عرض عدب السلام به پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مشغول نماز شد. دیدم از شب تا به صبح مشغول نمازه و دست سجده طولانی طولانی حیعش میریزه عرض میکند خدایا پروردگارا کم بنده تو بنده تو گناه میکنه بنده تو گناه کاره از اومد من عبدک ولی یه الافو من اندک خدا یا گناه من بالاست ولی احسان تو هم فوقلات است و احسان تو بالاتر است البته اینکه که حجت خدا عرض می کند گناه من بالاست گناه هرکس کس به اندازه خودش و قد خودش و قامت خودش حجت خدا و ولی خدا گناهش این گناهان متعارف نیست همین که انسان یک مرتبه فراموش کرد یک مرتبه در قضا خوردن و زندگی کردن یاد خدا نبود ذکر نبود اون رو گناه می دانن. اون خب بحث دیگریست مخصول از اینه که میگه از شب تا به صبح که عبادت میکند در سجد همین رو میگفت و عشق میریخ که ادوم از زن بو من عبدک فریت سنه لعف من اندک وابد شد بر بجلس حارون معمول میگوید پیش پدر نشسته بود دیدم مردی بارد شد با وقا و با عظمت چهره اش چهره عجیب قیام شیخون مسخدون شیخی بود مسخد مسخد یعنی تمام سر و صورت به طوری بود مثل اینکه می گویند پف می صورت یک همچنین حالتی داره قد من سجود و وچه و انف یا به تعبیر بعض دیگر از محدثین مثل ایون اخبا قد کل من از سجود وچه و انفر. یعنی در اثر سجده هم بینهی مجروح شده بود و هم صورت مجروح شده بود حالت جراحت داشت. اون چنان بود که انهو شنن باد مثل یک مشک خشدیده ای که روی زمین افتاده من به پدرم خارون گفتم این مرد با عظمت کیست؟ با این عظمت کیه؟ گفت این حجت خداست در روی زمین که شیعه معتقده این موسیب جعفر علیه سرات و سرات این عظمت او و این شخصیت او چنین شخصیتی داشت مقصط نجف علیه السلام حالا بنده فقط اون این شخصیت البته در تمام دنیا اسلام معروفه یه وقتی بنده با سلیمان کتانی در بیروت حدود 20 سال قبل بود صحبت میکرده سلیمان کتانی کتاب در باره حضرت امیر نوشته حضرت فاطمه نوشته در باره نوشته به بنده میگفت میگفت در دانشگاهی که تدریس میکنم فران استاد مسیحی به من گفت شما چقدر باره رجال اسلام می نویسید این همه رجال بزرگ در عدیان و در می میگفت روز دیگر که آمدیم در دانشگاه من راجع به موسفن جعفر کتاب می نوشتم حدود سد و هفتاد هشتاد سفه دستم بود به او دادم گفتم مطالعه کن مطالعه کرد هفته بعد آمد گفت حق با توست. ما نزید این انسان ها در تاریخ بشر نداریم این چقدر این موسب نجعفر با عظمته این زندگی اون عبادت اون وحث اون راز و نیاز اون زندان اون مبارزه اون مقابله با الها و بعد من گفتم این کتاب این موسب نجعفر که من دارم کتاب می نویسم براش از نواده های همون علی و فاطمه است که میگی چرا می نویسی چلیم این مختصری بود درباره امام هفتم علیه السلام که نکته مهمش همین است که موسفن جعفر فرمود صدخت انکانه لوکانه ابدان خافم اولا عزیزم برادران و خواهران ما اگر عبد خدا باشیم بنده خدا باشیم لباسمون باید بنده خدا باشه خدا بپسنده قیافمون رو بپسنده کارهامون رو بپسنده نگاهمون رو بپسنده خدا یعنی تمام عبد باشیم در همه امور بنده خدا پولمون بنده خدا در آمدمون بنده خدا زندگی مون بنده خدا اما از ادب در محضر مبارک امام مجتبی علیه است از نماز حضرت نماز مغرب و عشا بیرون آمدن آمدن خانه روز هم بود به او واسا امروز بود معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه سم می فرستاده بود برای همسر حضرت به, به نام جوده ابنه به نام جوده بنت اش محمد ابن اش وقتی حضرت وارد شد یومونها روز هم خیلی داغ بود حضرت هم کشنه بود یک زرف شیر خنک آورد سم در اون شیر ریخته بود حضرت نوشی حالشون منقرب شد بعضی نوشتن تا دروس بعضی بیشتر نوشتن که حضرت مرتب خون از گروگش میریخ جناده میگوید آمدم جلو نشستم تشتی ها حضرت دیدم هی خون میاد یک خون میاد و این تشت پر از خون شد پخی دیدم خاله آقا دیگه را چون آده میگه ارز کردم آقا در این لحظه منو نصیحت کنید در این لحظه منو موعظه کنید فرمود استعدل سفرت و هست زاده که قبل حلول اجده آماده ی سفر آخرت ما این همون است که یعنی همه ی عمه خدا اندیا و اولیا همه توصیهشون اینه همین که موسف نجه بود، بنده خدا فرمود باشه فرمود به او امام مجتبه علیه استرام استعدده در سفره و هسته زاده که قبل حرور اجده و ادم انکه تطلب و دنیا و موت و بدان جوده تو دنبال دنیا میدوی مرگم دنبال تو میاد. هر قدمی که تو می روی هم به دنبال دنیا می روی. هم به دنبال مرگ می روی همین تو میگه یک دفعه نگاه کردم این موعزه می کرد دیدم یه خروج و تبد و قطعه قطعه این پاره ها جگر پر از خون الله علیک یا حسن ابن علی گر المجتبى صلی الله یا مصطفی جعفر و رحمت الضیعه و برکاته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان ابتیناکل کوثر فصدد ربک عبانشاد ان شانه اکثر و اكثر الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد ما له امام الخلائق امين للمؤمنين علي بن ابي طالب و و طرق رسول از زهراء البتول و على الحسن والحسین و علی ابن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و علی ابن موسى و محمد بن علی و علی محمد والحسن بن علی و القائم و کالا که و امناه کفی بلادیک، خدم و عزیزان را بوره و تقوی توصیه می کنم تبریک از می کنم به کشور اراد تبریک از میکنم. کنم اینکه تروریست را از مملکت بیرون کرده تبریج عص میکنم که از تطی کشور جلوگیری کرد و این همه ز این همه فداکاری ها این که دشمن نتوانست با بسیج کردن یک مشرااضل او باش به خونخوا که داعش هستند با هزینه آلست او اشغال کنه کشور را. این که دشمن نتوانست تزییه کشور رو عملی کنه این مدیون و مغون ملتی بزرگ ملت عراق فداکاری ها ارتش نیروهای مردمی مقام مرجعیت ملت عراق به تسنیم گیرندگان این یک ارزش است که به یک اهمیتی است که انسان در تاریخ عراق وقتی نگاه کنه در آینده چنین روزی رو تمجید خواهدن رحبه عزیز انقلاب دامزلو که در تلویزیون هم شنیدید و ملاحظ فرمودید با نخوس وزیر اراق صحبت می کردن به همین نکته اشاره کردن به مطالبی فرمودن که بنده به دو کلمه اش اشاره میکنم کلمه اول این که به امریکا اعتماد نکن بسیار این مهمه که اعتماد به امریکا به معنای محب کشوره به معنای محب همه ی ارزش یک ملت است دوم این که به نیروهای فداکار به جوانان هم این مسئله مسئله ای بسیار با هممیدیت و پر عرضش. نسبت به کشور هم همین کشور در اثر همین اهمیتی که داده شد و قدرتهایی که در کشور از نظر معنوی و از نظر مادی و وسائل و ابزاد فراهم شد اینها همه به خاطر رهبری بود که امام دامست داشت و با اون نفس گرمش، اون چنان دمید در جوانهای ما که این چنین اینها ها این سفا در یک قصه این کنند که چند سال پیر همون اواخر زمانی حافظ جمهوری قبلی بود جان کریب وزید خارجه می به منطقه در یکی از این کشورهای عربی این گردندگان و به اصلاح سیاست مداران این کشورهای عربی جمع شدند ایشان هم مشهور سخنگاه نیست شروع می کنن اینها عصبانی شدن با جانکلی پرخاش می کنن می که ایران ایران با اینکه دشمن ماست شما چرا نسبت با ایران به ایران با ایران مخالفت نمی کنی و چنین و چنان اگر شما می آمدید این تروریس رو واقعا ریشتن می کردید این که یک بمبارون بکنید و بروید که این کار نشد مخصوصاً وزیر و امور خارجه که از کشورها که نام نمبرم خیلی داد می و می بلند می وسط سخندانه می کرد. جان کری نخ می کنند و می نویسند که یک پوشه ای در دستش بود این پوشه رو محکم میزند روی میز جلوش مطالبه میدهد دو نکتش میده نکته اول میگوید که شما شما که میگوید ما چرا تروریس رو اونچنان از بین نمیبریم که به طور کلی اینها اشغال کنند سوه و کجا و کجا رو؟ در در کشور شما به اون کشور آب دیگری که اشاره میکنه و گذارهای خارجی شما چه کسانی رو داری ما بمبارون کردیم چه کسانی رو دارید که در نیروی زمینی وارد بشه؟ به جلو بره و بیگیر جارو و راه شما نیروی زمینی دارید بعد میگه شما در تمام این کشورهای عربی یک جنرال سلیمانی دارید که دارید این حرف رو میزنید این یک نکته دو نکته دوبون میگه که شما میگویید که تروریست در حالی که دنیا متوجه شده که تروریست در کنار نیروهای امنیتی شماست شما با تروریستا همکاری میکنید با همکاری میکنید و میجنگید ولی ایران یک نیروی در تمام حرکاتش یک لحظه نشده است که مخالفتش رو با تروریست دست برداره می جنگ با تروریست این ایران با اون شجاعان اون ایران با مبارزش با تروریست شما چی میگید میگید چرا با این چنینو چرا میگید این مطلب مطلبیست واقعا که سرداران سپاه افسران ارتش نیروهای واقعا فداکار اینها ارزششان برای کشور خدای هم ایشان را سردار سلیمانی و هم تمام سرداران و افسران و جنبازان را در سایه امام از ارباه ناله الفدا از گزند حوادست کس فرمایه این نکته نکته مهم نیست که از کردم امام مراحلمون دمی با اون نفس ملکوتي رهبر عزیز انقلابمون به همون سبک و همون شیوه راه رو پیش بردن این یک پیروزی به یک موفقیت بزرگی بود که برای کشور پیش آمد و بعد هم به این نکته اشاره کردند که نیروهای شجاع و نیروهای فداکار اینا بایستی تمجید بشن تجلیل بشن اگر که این جریان نبود این کشور با این عظمت ایران با این ازدت به همزه داه و که در جهان این درخشه یک زمانی به فرماوش ایشان زیر پای جنرال امریکایی بود این چنین بود این که اون رئیس جمهور نادان در امریکا به بیعدب نسبت به ملت ایران حرف میزنه نسبت به سفاه اینها حرف میزنه این همه حسده این بغضه این دشمنیه، این جنگ با ملت ایران نیست این جنگ با فکر ملت، این جنگ با مغز انسان هاست این جنگ با اندیشه ها و دل و فداقاری ها به شجاعت هاست این امنیت مرحون همین شجاعت این عزت مرهون همین شجاعت و ولذا رحبر عزیزمون فرمودن فرمودن در اقتدار کشور در وسائلی که برای اقتدار کشور وسائل جنگی و نظامی اصلا قابل چکچونه نیست قابل حف زدن نیست چرا برای اقتدار کشور برای انسجام مملکت، برای اعتلاع کشور نیاز باشه همه رو فراهم میکنیم؟ این یک نکته است که باید همه توجه کنیم پی و جوان همه نیروها همه آنان که دستن در کارن که بدانیم دشمن با فکرها می جنگه فکر همونه که امام مطرح کرد فکر همونه که رهبر معظم انقلاب دنبال کردن این فکره این فکر و این فرهنگ رو باید حفظش کرد این فرهنگ است که کشور رو عزت میده به و اختلار میده، به نظر بنده می رسد البته این هر حرف کتابی نیست ولی این به نظرم میرسه این عربی که چند سال شروع شده و با این جمعیت و استهام استقبال میشه بست این که درش یک نکته است احتمالا و اون نکته است که گویا به این سو حرکت میکنه که کربلا محوره به این سو حرکت میکنه که حسین معلمه راه راه فداکاری است. راه شهادت. این رو از کجا عرض میکنم از این ندایی که امام از عجر الله تعالی فرج و شریف شاید. یا اهل العالم انا امام القائد یا اهل العالم انا امام المنتقم یا اهل العالم ان جدي الحسين قتلوا او بچوا ايوني او ملت های روی زمین همه کشورها به دادید جد من حسین جد من حسین این حسین داره میرد از مکه و مدینه جلو افتاد از خانه خدا و خانه پیغمبر جلو افتاد این همه عظمت این همه عظمت و بزرگی اینجا که آدم متوجه میشه بعضی نویسندگان در زیل این ندای حضرت وریعه از چنین تفسیر کرده که این که حضرت میفرماید که من چنینم و چنامم جدن حسین اینه این میخواد حضرت با ریشه زنب جنگه اشاره به حسین به کربلا این ریشه ظلمه البته این حد درسته ولی حالا آدم مطلب فقط این نیست مطلب این از که حسین دنیایی شده کربلا جهانی شده حضرت خودشو معرفی میکنه میگه می گه حسین این جدیه روزین اترو یا زیر سومه این چنین به نظر میرسه که داره زمان به مبارزه جلو میره زمان مقابله با ظلم داره پیش میره شرایط اینجور پیدا که حضرت هم این ندا رو داره این نجات این روایات زیادی است در مقابلی با قطعه کربرا روایات موتبت پیداست بحث اصلا به این طرف بیده صلی اللہ علیک یا عبا عبدالله و علا ارواح حضرتی حلت بثنائک عوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُوْدِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمَلُوا الشَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ اللهم يا حميد به محمد يا آلی به حق يا یا فاطر بحق فاطمه یا الحسن یا قدیم الاحسان به حق الحسین خدایا فرج امام اصلا عاجلا برسان پروردگارا او این سعادت و توفیق را به ما مرحمت فرما که تر، سربازان اون بزرگ باشی پروردگارا او پرچم اسلام ملت اسلام کشورهای اسلامی را دستاویع امام است از توطئه از, توت، از دشمنان از همکاری رؤسای بعضی از این کشورها با دشمنان نجات مرغمت یافت هر بادگارو مظلوم یمن سوریه افغانستان نقاط مختلف جهان از شر دشمنان مسون بیدار ما را به اون چه توس توست توفیق مرحمت بر با. خدایا امام بزرگ بارمون شهدایمون پدران و مادران و زلیل حقوقمون را بر سر صفری حضرت مجتبا و حضرت موسفن جعفر زیافت بفرما خدا یا پرچم جمهوری اسلامی پرچمدار نظام کشور ایران ملت ایران در سایه امام زمان ارباق و الفدا حفظ بفرما مشکلات کشور را رف بفرما گرفتاری ها را حل بفرما خدایا دعاهای ما را مستجاب کن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الاسق ان الانسان رفی خود الا الادین آمن و عمل و و تواصل بالحق و تواصل بالصدر